عشق وازی و جوانی و شراب لعل قام مجلس انس و خریف و همدم و شرب مدام ساقی شکر دهان و مطرب شیرین سخن هم نشینی نیک کردار و ندیم نیک نام شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی دلبری در حسن خوبی غیرت ماه تمام بعض مگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین گلشنی پیرامونش چون روزه دار و سلام سفنشینان نیخ خواه و پیشکاران با عدب دوست داران صاحب و حریفان دوست کام باده گلرنگ تلخ تیز خوشخار سبک نقلش از لعل نگار و نقلش از یاغوت خام قمزه ساغی به یغمای خرد آهخت دیق زلف جانان از برای سید دل گسترده دام نکتدانی بزلگوچون هافظ شیرین سخن بخش شاموزی جهان افروز چون حاجی قوام هر که این اشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام